شعر قبرستان بقیه چهار مام بدون زری غمبار است هزار قلب شکسته به پشت دیوار است. صدای گریه نمی آید از کسی اما به قلبها ها همهدم. روزها بسیار است صدای گریه به دوش گر برسد جواب سیلی دشمن هنوز در کار است مدینه روشن و اما بقی تاریک و بدون شمع و چراغ و بدون زوار است هماره اشق حسن در دل است ای آلم به یاد سید سجاد دید خونبار است کلام باقر و صادق روی لب هردم وجود ز انایاتشان چه سرشار است